درود بر در دوستان عزیز، یاران همراه و علاقه به قصده های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با ادامه داستان پسران فریدون، سلم، تور و ایرج و اتفاقاتی که برای اونها میفته در خدمت شما هستیم در برنامه قبل تا اونجا پیش رفتیم که بر اثر تقسیم بندی که فریدون انجام داد و کشورش رو به سه قسمت تقسیم کرد و قلمرویش رو به فرزندانش داد. سلم و تور از بخش‌هایی که بهشون رسیده بود ناراضی بودند و به برادر دیگرشون ایرج حسادت می‌کردند و در فکر این بودند که نقشه بکشن تا یک جوری هم از اون انتقام بگیرن و هم اینکه به قلمرو پادشاهی ایرج یا همون بخش ایران دسترسی پیدا کنه. ادامه این داستان رو که اسمش هست پیغام سلم به فریدون با هم میشنوید سلم تو فکر نخشهی حساب شده بودن تا بتونن رفتار بدشون رو تلافی کنن البته رفتار بد به زحم اونها بد بود چون فریدون کشور رو به سه قسمت تقسیم کرد و بر اساس لیاقت و آزمون هایی که از فرزندانش گرفته بود اون سه قسمت رو به اونها بخشید اما سلم و تور چون آدمهای زیاده زیاد خواهی بودن به حق خودشون قانع نبودند و حق بیشتری میخواستند و مخصوصا به برادر دیگهشون به برادر ناتنیشون ایرج هم حسادت میکردند برای همین در صدد ای بودند برای انتقام گرفتن برای اولین قدم تصمیم گرفتن به وسیله یک موبد دانا و سخنور پیغامی رو برای پدرشون بفرستند سلم موبدی رو انتخاب کردند و به او گفتند این موبد به نزد پدرمون فریدون برو به او سلام و درود ما رو برسون و بعدش بگو که پسرات یعنی سال میگویند که سالها پیش وقتی که جوون تر بودی به صورت ناعادلانه قلم رو خودت رو بین ما و ایرش تقسیم کردی سهم ما این شد که سالهای سختی رو در همنشینی با ترک ها و رومی ها باید میگذروندیم در حالی که ایرش در کنار شما به خوشی در سرزمین ایران که بخش آباد و بسیار پر ناز و نعمت این قلم رو بود روزگار گذرونده حالا که به کهنسالی رسیدی بیا و این تقسیم نادرست رو سر و سامونی بده و خودت رو از عذاب خداوند و بدی که در حق ما کردی نجات بده. دوره فرمان روایی ایراج بر ایران باید تموم بشه. در غیر این صورت ما با تمام توان و قدرتمون با هم متحد میشیم و به سوی ایران لشکر کشی ما هیچی از ایرج کمتر نداریم و چه بسا که از او شایسته تر هم هستیم و اگر پیشنهاد ما را بپذیرید که همه چیز رو به راه میشه و ما سه برادر هم با هم مشکلی نخواهیم داشت. موبد دانا میدونست که حرفهای های سلم و تور ناشایسته و بی اساس اما چون مجبور بود به سمت ایران و دربار فریدون رفت تا پیغام اونها رو برسونه همونطور که موبد حدث زده بود و ما هم حدث می زدیم، فریدون از شنیدن پیغام سلم و تور بسیار عصبانی و ناراحت شد و فریاد زد ای موبد همین الان پیش اون دو فرزند نادون و بیشرم من برو و بگو سلام و درودشون به درد خودشون میخوره که من احتیاجی به اون ندارم و بهشون بگو که به ایزد یک و به خداوند قسم، من در حق اونا هیچ بدی نکردم و اگر سلم و قصد شومی داشته باشند و بدی کنند نتیجه یه بدیشون رو خواهند دید و اگر از خواسته های نادرستشون پشیمون نشن و راه خوبی و درستی در پیش بگیرند که بیشک خوبی و نیکی نصیب اونها خواهد شد بعد هم گفت به پسران بگو از خدا بترسین، به وسوسه های شیطون فریب کار گوش نکنین که نتیجهی جز تباهی و مرگ در پیش رو نخواهید داشت اچنده رفتار ایرج بسیار شایسته تر سلم و توره و هیچ وقتم چشم تمع به اموال من نداشته اما با این وجود من هیچ تبعیزی میونه سفه قائل نشدم و از ایزد یکتا برای سلم و تور آرزوی بخشش و هدایت میکنم. موبعد پس از اینکه تمام تمام حرفهای فریدون رو با دقت گوش کرد با احترام تعظیم کرد و به سوی قلمرو سلم و تور روانه شد تا پیغام پدرشون رو به اونها بگه اما سلم و تور منتظر اومدن موبد نشدند چون شاید احتمالا خودشون هم میدونستند که فریدون آدمی نیست که تن به همچین تهدیدهایی بده برای همین سپاه بزرگی رو جم آوری کردند آماده کردند و به سوی ایران لشکرکشی کردند و در نزدیکی مرزهای ایران اتراق کردند و اردوگاه جنگی برپا کردند سربازا مشغول به برپا کردن اردو و چادرها بودند و سرداران سپاه هم طراحی نقشه حمله را انجام میدادند از طرف دیگه فریدون با غم و اندوه در فکر پیغام ناشایست پسراش بود که خبر لشکرکشی زود هنگام و اونها و سپاهی سپاهیاشون در کنار مرزهای ایران رو شنید فریدون که در اون موقع دیگه پیر و خسته و فرتود شده بود با قلبی دردمند به سراغ ایرج رفت و تمام ماجرا رو با ایرج در میون گذاشت ایرج با مهربانی تمام دستهای چروکیده پدرش رو گرفت و بر اونا بوسه زد و گفت پدر برادرانم فریب ظاهر این دنیای فانی و زودگذر رو خوردند و هیچ متوجه نتیجه کارهاشون نیستن من تنها به حرف شما گوش دادم و حکومت بر سرزمین ایرانو قبول کردم و هیچ بدی در حق برادران انجام ندادم حالا هم این تاج و تخت در مقابل روابط خانوادگی و حس برادری برای من هیچ ارزشی نداره فریدون با صدای لرزون گفت پسرم اونا به زودی با سپاه بزرگی وارد ایران میشن تا تو را از بین ببرن تا دیر نشده تو هم سپاهی را آماده کن و برای مقابله با اونها برو ایرج لبخندی زد و گفت پدر بزرگوارم شما نگران این چیزا نباشید و غم به دلتون راه ندید من فردا صبح به طرف اونها حرکت میکنم و با زبونی نرم و سلم و تور میخوام تا دشمنی و کینه رو کنار بگذارند و به قلم روحاشون برگردند فریدون آهی کشید و گفت ای کاش اون دوتا همین تو هوش و جوون مردی در وجودشون بود اگه تصمیم تو اینه من مانع رفتنت نمیشم اما اینو بدون که سلم و تور کینه تو رو تو دلشون دارند و فکر نمیکنم. با سخن‌ها و حرفهای تو هارون بگیرند و برگردند راهی که انتخاب کردی شاید راه بی بیبازگشتی باشه پسرم خوب به همه چیز فکر کن و اگر واقعا قصدت رفتن به سمت سلم و تور برای مذاکره و دلجوییه چند دلاور جنگجو رو هم با خودت به اونجا ببر ایرج همچنان پدرش رو دلداری میداد و اون آروم می میکرد و به سربازاش دستور داد تا مقدمات سفر اون رو به سمت مرزهای ایران آماده کند بله دوستان همونطور که می شنیدیم و این داستان به طور مفصل در جلد اول شاهنامه فردوسی آمده کینه سلم و تور بر اثر حسادت و زیاد خواهی نسبت به برادر کوچکترشون یا برادر ناتنیشون کار رو به جاهای باریکی که شود. و در برنامه های بعدی این قصه رو پی می گیریم تا ببینیم ماجرای سلم و تور و ایرج به کجا میرسه و ادامه ماجرا چه خواهد بود تا برنامه دیگر و قصه دیگر از بسه های شاهنامه فردوسی همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می, می سپرم روز روزگار کام